داستان پنجام سرباز سربی چهار پنج سال است که من اقلا روزی چهار مرتبه توی این اتوبوس های خط میدان سپه شاهپور سوار می شوم غریب این که من در این اتوبوسها بیش از آنچه در عرض هشت سال در مدرسه ابتدایی و دو سال در مدرسه متوسط درس یاد گرفتم چیز فهمیدم این مطلب خیلی هم غریب نیست برای آن که من اصلاً بچه کودن و کمرویی بودم. هر وقت مطلبی را دو یا سه مرتبه میفهمیدم و از معلمیمان خدا بیامر زدش میپرسیدم او میگفت: « بعضی ها هیچ وقت نمیفهمند. اما در این اتوبوس‌ها یک چیز مهمی دستگیر من شد. گاهی اتومبیل‌ها هنوز پر نشده بود و اجباراً به زور اوقات تلخی مسافرین تا نزدیک چهارراه حسنآباد می رسید. در این صورت شاگرد شوفر البته کاملا مواظب بود که کجا مسافری میخواهد سوار شود اتفاقا اگر نمیدید شوفر میگفت حواست کجاست یالا دهشایی رو بنداز تو و یا دهشایی رو از سر را بردار در هر صورت این دهشایی خیلی تکرار میشد و البته مقصود از دهشایی مسافر بود هر نفر آدم برای شوفر دهشایی میارزید در صورتی که این آدم گاهی مثلا هاجلی آقا چوبچی بود که بیش از صد هزار تومان تمول داشت و یا رئیس اداره دواب بود که 800 تومان سرقفری داده بود و به غیر از دو سه هزار تومان منافع مایی 400 تومان حقوق داشت. همچنین خود من در روزی که حقوق گرفتم و قریب 710 دهشاهی دارم قیمت من برای او همان دهشاهی بود و روز پیش از حقوق هم که پس از پرداخت پول بلیط جیبم مثل قلب مؤمن پاک میشد قیمت من برای او فرقی نمی کرد. یک روز توی یکی از این اوتوموبیل ها زنیکی نشسته بود و روی لبه پنجره اتومبیل یک سرباز سربی گذاشته بود گاهی این سرباز را در می آورد، توی دهنش می کرد و بعد می گذاشت سر جای اولیش و همین که عروسک به واسطه تکان اتومبیل برمیگشت باز آن را بر میداشت توی دهنش میکرد. من مدتی متوجه این کار او بودم. پشت سرم که نگاه کردم دیدم فه نشسته و با من سلام و تعارف کرد. من با او در ضمن مسافرت به جنوب آشنا شده بودم. وقتیی از اتومبیل پیاده شدم یادم اومد که همین آشنای من از این سرباز سربی درست می کند و به مغازه ها میفروشد. مدتی گذشت و من فه را دیگر ندیدم زیرا که من در آن وقت عضو اداره تهدید تریاک بودم و مرا برای فسا معمور کردند و من در آنجا ناخوش شدم و برگشتم و مدتها بیکار بودم از سفر که برگشتم تقریبا پس از دو سال رفتم به دیدن فه علتش این بود که یکی از معمورین مالی فسا او را می و توسط من برای او مقداری تریاک فرستاده بود رفیقم جور غریبی به نظرم آمد. همون اتاق کارش که قدیم پر از دیگ و ورقه‌های های سرب و زغال و تابه و همبونه و در عین حال مرتب بود، امروز در هم و بر هم مینمود. منقل من را درست کردم و با هم توی حیات غالیچه انداختیم و نشستیم. صحبت از آن زند شد. بعد خودش را برای من تعریف کرد. اول از روی بیمیلی، بعد که دید من مقصودی ندارم بیشتر خودش عجله داشت اما بی ترتیب. بیشترش طوری بود که من بند و آن را نمی توانستم بفهمم. بالاخره هم بقیهش را تعریف نکرد و من از این طرفان طرف و انطرف فهمیدم که گرفتار شده. منتها بالاخره علت حقیقی دیوانگی او را درست هم نفهم. من باید تمام قصه هم را اول به یاد خودم بیاورم بعد برای تو بگویم چه قصه ای؟ خودم نمیدانم از کجا تعریف کنم از روزی که به دنیا آمدم از روزی که دست چپ و راست خودم را تشخیص دادم زندگی خانوادگی خودم را پدرم چجور آدمی بود؟ چقدر مادرم را دوست داشتم؟ نه حوصله نداره. صحبت کردن اشخاص تریاکی جور مخصوصی است. یک جمله را شروع می کنند و یک بست به سر حقه می شست کنند تا آن بس تمام نشود جمله هم تمام نمی شنونده باید حوصله داشته باشد و از جز جز تریاک بیزار نشود چیزی که صحبت این تریاکی ها را گوارا می کند آهنگ شیرین و ملایم صدایان هاست. هیچ یادت هست که ما در کدام درکی بود که با هم آشنا شدیم در راه جنوب بود نمیدونم شاید در کازرون بود من پس از آن که از تو جدا شدم بله حالا پنج سال می شود. رفتم به بوشهر رفتم که یک ماه در بوشهر بمانم یک ماموریت جزئی داشتم عوض یک ماه یک سال ماندم از اداره هم مرا بیرون کردند برای آن که به من گفتند بیاد تهران نیامدم همانجا ماندم حسرت سر می‌رود تو میخواهی بفهمی که رابطه من با این زن که تو آن روز در اتومبیل دیدی و اون عروسه که دستش بود چیست؟ صبر داشته باش تو باید بدانی که زندگی من از اول از وقتی که از پدرم جدا شدم از همین خرط و خورد که دروبرت میبینی تجاوز نکرده. روزها پیش آمده است که من نهار و شام هم نخوردم. برای آنکه اگر چیزی داشتم و فروختم، آن هم خرج تریاک شده است. این زندگی من تمامش تقصیر پدرم بوده است. شاید هم اینجور نباشد. بلا، چرا من آدم نشدم؟ اینجور نیست؟ تو از من بدت میآید چون که من تریاک میکشم. حق هم داری همه میدانی که من خودم هم از خودم بیزارم. خبر نداری ببین پشت دست مرا نگاه کن یقه پیرانم را نگاه کن شاید الان دو هفته از که آب به صورتم نزدم فرزن هم تازه چه میشود من که همیشه تریاکی نبودم همیشه اینجور نبودم من که اینجور خلق نشدم آن وقت که در بوشهر بودم تریاک نمیکشیدم بعد تریاکی شدم همون وقتها تازه مادرم مرده بود یادم میآید به بدنم رأشه میافتد او هم مرا دوست داشت من شانزده سال داشتم ولی تا مادرم دستش را توی دست من نمیگذاشت خواب به چشمم نمی آمد اینها یک چیزهایی نیست که همه کس بتواند بفهمد. در بوشهر بله. در بوشهر خانه رئیس اداره‌ام بیچاره حالا به تامه خاچاخ کردن تریاک حبس است. منزل ذل داشتم. ولتش این بود که من یک ته داشتم چون که پیش پدرم قرائت قرآن یاد گرفته بودم. آن رئیس ادارم اهل ذوق بود. هر شب بچه مچه ها را جمع می کرد بسات عرقی و شرابی تهیه شد و سور ما راه بود تو باید این را هم بدانی من تا آن وقت عرق نخورده بودم اصلا راست و پوسکنده هیچ بامبولی نزده بودم هیچ فرقه ای من جز به خودش حساب نمی کرد. گذشته از اینکه من بچه ها بودم همیشه پکر هم بودم و دستم به هیچ جا نمی رسید. بزرگترین لذت من در زندگانی این بود که پهلوی مادرم بنشینم، دستهای نرم او را در دستم بگذارم و او را دلداری بدم. یک شب به من زیاد عرق دادند، به طوری که من حالم به هم خورد. همان شب هیچ چیزش یادم نیست. صبح دیدم که توی اتاق نشسته، تشت آفتاب آورده و, و میخواهد قالی را که من در شب پیش رویش غی کرده بودم آب بکشد. کوکب رویش باز بود و من میتوانستم او را ببینم لبهای سرخی داشت زلفهایش چطری روی پیشانیش افتاده بود و صورتش گرد و گوشتالو بود بعد فهمیدم که آقا این کوکب را از شیراز دایه کرده بوده و او یک ساله عجیران ها شده بوده است اما حالا چون خوب کلفتی بوده میخواستن با وجودی که یک سالش تمام شده بوده باز هم نگهش دارن اینها را خودش برای من تعریف میکرد خب من یک سال عجیر بودم با خوبی و ولیشان ساختم حالا دیگر نمیخواهم اینجا بمانم آقا خیلی خوب است. هیچ میشان عیبی ندارن بچه را هم من دوست دارم اما اینها همش درست و حسابی من میخواهم بروم و شوهر کنم میخواهم بروم به شیراز میخواهم بروم شوهر کنم میخواهم بروم پلوی همون شوهر اولیم. او نظام وظیفه تمام شده. مرا یک تلاقه کرد و من باز هم می توانم زنش بشوم. من میرم زر خریدشان که نیستم. و کوکب حرف خودش را سبس کرد. این را یادم رفت بگویم. کوکب وقتی که درد هایش را برای من گفت جواب دادم حق با توست. اگر من جای آقا بودم تو را روانه می کردم. کوکب حرفش را سبس کرد. یک شب وقتی که من به خانه رفتم میدم کوکب توی خانه من است، آمده بود که من روانه شیرازش کنم. از اینجا سرگذشت دقیقی من با این کوکب شروع می شود. حگاه سفید رنگ و بعد کبود رنگ دود تریاک به صحبت های او یک حالت فلسفی میداد. هر وقت این زن داخل زندگانی من شد عضاعای برهم زد. اگر کوچکترین هوا و تصور بکنی ما بین من و این زن نبود من از کوکب خوشم میآمد او را دوست داشت امان که آدم مادرش را دوست دارد اما رابطه ما بین ما نبود زجرهایی که من در زندگی کشیدم هایی که مستقیما و یا غیر مستقیم به دست کوکب به سر من آمد تمام اینها برای من حتمی و مسلم بود من به این زندگانی محکوم بودم روز اول که داخل زندگانی شدم نشو و نمای من در آن خانه در زیر دستان پدر و در دامن آن مادر تمام اینها مرا وادار می‌کرد که یک چنین خط مشی در زندگانی اختیار کنم تمام آن علتهایی داشت من بیچاره بازیچه بودم ای کاش عوض اینکه می‌گویم می‌خواهم می توانستم بگویم مرا خواهانند. سوفای متوالی و لاینقطه حرف او را قطع کردند. پس از چند دقیقه باز از نو شروع کرد. از مطلب دور شدم. یک شب کوکب در خانه من بود. آمده بود که صبح حرکت کند. قرار شد من صبح برایش اتومبیل بگیرم و او را به شیراز روانه کنم. من یک اتاق بیشتر نداشتم. گلی خریده بودم و در آن انداخته بودم. نصف اتاق مفروش بود. کوکب بخشه خودش را باز کرد روی زمین انداخت و خوابید. صبح زود من عقب اتومبیل رفتم. همه ی قرار و مدار آن را گذاشتم. ظهر که به خانه برگشتم دیدم کوکب نیست. با گاراژدار قرار گذاشته بودم که طرف اصری مسافر حرکت کند. مدتی منتظر او شدم از کار بیکار شدم به اداره نرفتم غروب آفتاب بود که دیدم کوکب برگشته و آتش تلخ است من از صبح تا عقب شما میگشتم دیشب که دست دستپاچگی اسبابایم را جمع کردم یک چیزی را فراموش کردم اگر پیدایش نکنم حتما یک بلایی در راه به سر من میآید عوض جواب و هایم را پوشیدم و عقب کار رفتم شب دیر آمدم به خانه دیدم که کب سر بخچهش نشسته و دارد از پاپایش رو به هم می زند. از او پرسیدم چی چی گم کردی؟ دیدم دارد حق حق گریه می کند یک عروسک چه عروسکی؟ یک سرباز سربی من تعجب کردم و گفتم یک سرباز سربی ده شایی قیمت دارد دیگر این همه گری و زاری ندارد مثل این کرف من نفهمید، به من گفت، ده شایی؟ برای من به اندازه جانم قیمت داشت. این سرباز سربی را کوکب از خانه آقای بچهش به دست آورده بود. روزی بچه را به گردش برده، از یک دکان عدتاری این سرباز را خریده بود. اما چون سرباز دست بچه را بریده بود، خانم نگذاشته بود که آن را دست بچه بدهد. از همین جهت کوکب از خانوم رنجیده بود و دیگر نخواسته بود آنجا بماند از آن وقت تا با حال همیشه آن را پیش خودش نگاه داشته بود و حالا قصهاش شده بود این گم شدن سرباز را به فال بد میگرفت بعد از چند روز که در خانه من بود یک روز به من گفت میدانید من اصلا دلم شور میزند دیگر نمیخواهم بروم به شیراز مثل اینکه دیگر شوهرم از من سیر شده است و مرا دیگر نخواهد گرفت اگر بخوایید همینجا کلفتی شما را میکنم و الا میروم جای دیگر من باید آنقدر در این شهر بمانم تا این سرباز سربی را پیدا کنم و الا از غصه خواهم مرد و کب ماند و نمرد یک ماه ماند و مرا را کشت شبها من روی پشت بام میرفتم و کوکب توی اتاق میخوابید صبح چای مرا درست میکرد، رختهای مرا پاک میکرد و نهار میپخت. بعضی اوقات با هم غذا میخوردیم، اینطوری که او از من نگهداری میکرد من خیال میکردم مادرم است و به همین خیال خوش بودم. شب پهلوی هم مینشستیم، یک ماه اینطور گذشت، پس از آن مرا به تهران احضار کردند. به کوکب گفتم، من باید بروم به تهران، اگر به تو را میبرم. گفت، نه من همینجا میمانم. من باید این سرباز را پیدا کنم و الا خواهم مرد. بعد کمی فکر کرد و گفت، شما کی می روید به تهران؟ من برای روز شنبه حرکت می کنم. آن وقت از جایش بلند شد که برود شام بکشد و گفت، من هم تا روز شنبه برای خودم جایی پیدا می من گفتم، حالا تا روز شنبه، اما روز شنبه من حرکت نکردم، شنبه دیگر هم حرکت نکردم، شنبه استبوم هم هنوز آنجا بودم، ابلاغ از تهران آمد که چرا من خبر حرکت خودم را ندادم، ابلاغ را پاره کردم، از هفته چهارم دیگر حقوق من قطع شد، در عرض این چهار هفته کوکب هم برای خودش جای پیدا نکرده بود، یک شب از او پرسیدم، این سرباز سربی که تو داشتی چه شکلی بود؟ بگو شاید بتوانم این آن را برایت بخرم. بی خود خودت را عذیت نکن. من تمام این شهر را گشتم. یک چون این سرباز سربی که من داشتم هیچ جا پیدا نمی شود. اما شما شبها خیلی به خودتان می دیشب آمدم سر رخت خوابتان. چرا آنقدر برای مادرتان بیتابی می راست میگفت یادم میآید آید که خواب می دیدم صاحب منصبی با شمشیر لخت حمله کرده به طرف مادرم پدرم آن جایی بود و حرفی نمی زد اما علتشان بود که من در آن ایام زیاد عرق می خوردم. فردای آن روز با کوکب رفتیم که سرباز سربی بخریم بیخود چون هر جا که می رفتیم کوکب می گفت نه این عروسک ها هیچ کدام آن سرباز نیست آن وقت من به فکر افتادم که خودم این سرباز را آن جوری که کوکب میخواسته است برایش بسازم مدل چوبی درست کردم، صرف خریدم. دیگر این را دیدی و خودت میدانی بالاخره آن سرباز سربی آنطوری که کوکب میخواست درست نشد این هم باشد که من سربازها رو میفروختم و از فروشان زندگانی میکردم همانطوری که حالا هم زندگی میکنیم اما چه فایده آن سرباز اولی آن سرباز هیچ وقت درست نشد یک سال آزگار درست نشد روزها کار ما همین بود شبها با هم حرف میزدیم گاهی کوکب از شوهرش که اکنون در غشونه از صحبت میکرد اینجا من حرف فراغت کردم برای که هیچ اول و آخر موضوع رو نفهمیدم. آخر آدم برای خاطر یک کلفت که آنقدر به خودش زحمت نمیدهد. ولی من احساس میکردم که این سرگذشت در او زیاد تأثیر کرده و سخت او را متأثر کرده است. من حدس میذرم که از افشای یک مطلب مهم خودداری میکند. از این جهت از او پرسیدم. مگر تو دوستش داشتی؟ تو که خودت اول گفتی هیچ رابطه ای ما بین شما نبود؟ رفیقم هم جواب مرا نداد و دنبال حرفش را گرفت. بعد از چهار ماه بالاخره به این فکر افتادم که ممکن است یک چی سرباز سربی که کوکب میگوید اصلا وجود نداشته باشد. از این جهت یک روز صبح که بلند شدم عوض اینکه سرباز سربی بریزم شروع کردم به چوب تراشیدن و غالب ساختن. یک آدم مهیب میخواستم درست بکنم. اما این غالب آنجوری که میخواستم نشد. صورتش آنجوری که من تصور می کردم درست در نمیامد. من میخواستم آن را مهیب درست کنم اما بی اختیار به شکل پدرم در میآد. چقدر من در این غالب گرفتن زجر و مصیبت کشیده ام برای برای اینکه تو که سهل است هیچکس نمیتواند بفهمد. تازه تو می پرسی. مگر او را دوست داشتی؟ دوستی یعنی چه؟ من مصیبت از این بزرگتر چشیدم لذتی که برای شما طبیعی است برای من زجر است من محکوم بودم به اینکه نتوانم دوست داشته باشم هزار زجر و شکنجه در دنیا است این مصیبت را کسی نتوانسته از تصور کند که ممکن است اشخاصی باشند که نتوانند اصلا دوست داشته باشند بلا؟ بلا هم اسمی برای درد من است. حوصله ندارم. این سرباز درست شد. اما به قیمت زندگانی من. حالا پس از یک سال فهمیدم که کوکب حق داشت. این سرباز سربی از آنها نبود. بالاخره یکی درست کردم و توی بخچهش گذاشتم. چند شب این کار را تکرار کردم. تمام شد. پس اول زندگانی من تمام شد یک روز صبح که از خواب بلند شدم دیدم کوکب نیست